فصل دوم. اتاقاشون اصلا جدا بود هفتاد سالی داشتن شایدم بیشتر البته کاراشون شبیه هفتات سالها نبود دوتایی در بوده آقون و به درد نخور بودن و از این حرفا میدونم اینجوری حرف زدم بدجنسیه ولی لحنمون اونقدران بدجنسانه نیست بقیم میخوام بگم قبلن خیلی به این اسپنسر فکر میکردم و وقتی آدم خیلی بهش فکر میکنه به این نتیجه میرسه که این بابا چرا بعد هنوز زنده باشه چرک شد و بد جوری از هم بارفته سر کلاس هم هر بر گچ از دستش میافتاد نفر جلوی کلاس بعد پوم شد میرفت گچ و میداد دستش به نظرم افتضاحه ولی اگه زیاد به آقای اسپنسر فکر نکنی اون وقت به این نتیجه میرسی که عوضش اون قطران بد نیست مثلا یه روز یکشنبه وقتی من و چند از بچه ها رفته بودیم پیشش هاتچکلت بزنیم با اون روانداز زایهی ناجورش که با خانوم اسپنسر از یه سرخ بوسته توی پارک یه خریده بودن پیدا شد تابلو بود از خریدش خرکیف شده حرف منم همینه یه پیره آبزیپوین اسپنسر با خرید یه روانداز عتیقه اینقدر حیجان زده میشه عجیبه نه؟ در اتاقش باز بود ولی در زدم که بیادبی نکرده باشم حتی میدیدمش که کجا نشسته رو صندلی چرمی بزرگش رواندازی هم که الان داشتم میگفتم پیچیده بود دورش وقتی در زدم سر کشید نگام کرد داد زد کیه؟ کالفید؟ بیا تو پسر همیشه بیرون از کلاس داد میزد. زد حسابی می رفت رو حسابم. تا پا تو از اومدنم پشیمون شدم داشت ماهنامه اتلانتیک میخوند دو و درشم کلی لی دوا و قرص پخش و پلا بود اونقدر که همیجا باید داروخونه گرفته بود حتی تماشاش هم حالی گیری بود البته آدمای مریض خیلی به همم هم نمیریزن. چیزی که بیشتر ازیت هم می کرد دیدنش تو رب دو شامر و پوسیده همیشهگیش بود که انگار نافشو رو باش بریده بودن دوست ندارم آدم پیرا رو پیجامه به پا و رب دو شامر به تم ببینم همیشه شونمونه و پراپای چرکی بیرون میافته حال به هم زنه. پای آدم پیرا همیشه کنار دریا و اینجور جا خیلی بی بیموسفید میزنه سلام آقا یاد دیدم خیلی ممنون برام نوشته بود اگه راستی راستی رفتنی شدم و دیگه قرار نیست برگردم مدرسه قبل از شروع تعطیلات برم برای خودفزی آقای اسپنسر گفت بشین اونجا پسر منظورش روی تق بود نشستم سرماخوردگیتون بهتر آقا پسرم اگه از این بهتر بودم باید میرفتم پیش دکتر و این حرف خودش خیلی آل کرد اینه خلوچلو پشت هم میخندید بعد بالاخره خودش رو جمع جور کرد و گفت چرا نرفتی بازی رو ببینی خیال کردم امروز روز بازی اصلیه بله آقا روز بازیه منم اونجا بودم ولی تازه با تیم و شمشیر بازی از نیویورک برگشته بودم پسر تختش با سنگ مونه می زد. یه یهوی جدی شد میدونستم بالاخره جدی میشه پس داری ما رو ترک میکنی هان بله آقا گمونم بخوام برم شروع کرد مثل همیشه سرشو مدام جلو عقب دادن. کسی رو توی دنیا پیدا نمیکننی که بیشتر از این اسپنسر سرشو تکم بده. آخرشم نمیفهمی چرا ای سرشو تکم میده نمیدونیم مثلا داره فکر میکنه یا اینکه جایی سر و تهش با هم عوضی گرفته. پسرم دکتر ترمر به چی گفت؟ خبر دارم باش گب زدی. آره درست آقا حرف زدیم گمونم دو ساعتی باش تو دفتر نشستم. به چیا گفت؟ خب درباره اینکه زندگی همش بازی و این حرفا به این گفت چطوری باید با قواید بازی پیش برم خیلی غشنگ توضیح میداد یعنی زیادی شلوغش نکرد و به سحرا نزد از این گفت که زندگی همش یه بازیه آره پسر زندگی بازیه یه بازی که باید بر اساس قوایدش پیش بری ولی آقا میدونم درسته ای مردشورتون رو ببرم با این بازیاتون هی بازی بازی مرگ بازی. اصلا بازی چی؟ اگه طرف آغازده وایستاده باشی خب آره اون وقت این داستان بازی رو قبول دارم ولی اگه طرف دیگه وایستاده باشی طرفی که آغازده ها نیستن یعنی طرف آدمایی تهصفی اون وقت بازی چه معنی داره؟ هیچی؟ اصلا بازی در کار نیست آقای اسمنسر ازم پرسید: دکتر ترمر به پدر مادر اطلاع داده به هم گفت دوشنبه بهشون خبر میده. خودت باشون تماس نگرفتی؟ نه آقا با تماس نگرفتم چون احتمالاً چهارشنبه شب که برسم خونه ببینم فکر یک اک میکنی اکس چی باشه؟ خب حتما عصبانی میشن خیلی هم عصبانی میشن چون این چهارومین مدرسه که ول میکنن سرتکون دادم معمولا زیاد سرتکون میدم پسر همین پسرم هم گیر کرده تو دهنم نصفش به خاطر وضعیت خیت دایره لغاتم و نصف دیگرش هم به خاطر اینکه که گایی رفتار میکنم. اون موقع شونزه سالم و الان هیوده سالم و 13 سیزده رفتار میکنم. خنده داره برای یه نرخری یک و اشتاد و مو سفید موام سفید شدن رفتم پی کارشون یه طرف کلم طرف راستش هوارت و موی سفید در مدن. از بچگی همینطوری بوده این همه موی سفید ولی بازم گایینه یعنی دوازده سالها رفتار میکنن همه هم مدام بهم به تذکر میدن بیشتر از همه بابام حرفشون درسته ولی درسته درست هم نیست آدما همیشه فکر میکنن هرچی میگن درسته درسته بر مهم نیست بعد گاهی دیگه انقدر تکرار میکنن که کفری میشم گاهی هم خیلی بزرگتر از سنم رفتار میکنم خیلی بیشتر ولی آدم ها اصلا متوجه نمیشن آدم ها هیچ وقت متوجهی هیچی نمیشن آقای اسپنسر دوباره سریع عقب جلو کرد تو از این بار دستی هم توی دماغش برد انگاری انبور انداخته بود ولی انبور نبود فقط شست چروکش رفته شرفته بود انتو. که گمونم به خودش گفت این هست راحتان همین برام اهمیتی نداشت ولی این کارش خیلی زایه بود بعد گفت من افتخار آشنایی با پدر مادرت رو چند هفته پیش که داشتم با دکتر ترمر صحبت میکردن داشتم. آدم خیلی محترمی بودن. بله درست آدم خوبی هستن. محترم. از این کلمه متنفرم. زیادی جهل بود. هر بار به گوشم میخورد قاطی میکردم. بعد یهو آقای اسپنسر تمام رو جمع کرد و قیافه آدم جدی رو گرفت که میخوان حرف خیلی مهم می بزنن. معمولا رو سندلی چرختارش میشینه و با همون این برون برمیره خب راستش اشتباه کردم میچه حرفی نداشت اون تمرکز مسخرهشم کشک بود اقام میخواست مجلر از روی پشت برداره و بندازه کنار دستم روی تخت <تصفح> به هدفم نزد دستانت بیشتر فاصله نداشت ولی آقا گند زد پشت از روی زمین برداشتم و گذاشتمش روی تخت یهوی یه های کردم در برم بوی شروع سخنرانی مشتی داشت پر راهی دماغم و می لرزند خود سخنرانی زیاد مهم نبود اصلش این بود که حال دادن به سخنرانی و شنیدن بوی دارخونه و تماشای آقای اسپنسر با اون پیجامو و رب دوشامو این حرف رو یه جا نداشتم اصلا حالش نبود اوه شروع شد پسرم تو چته؟ خیلی لحنش توند بود البته نسبت به همیشهش این ترم چند تا درس برداشتی؟ پنجتا تا آقا تا چند تا چهار تا به لبه تخت نزدیک تر شدم سنگین ترین تختی بود که به عمرم روش نشسته بودم انگلیسی رو پاس کردم آخه داستان بیوولف و پسرم لورد راندلو وقتی مدرسه هتوم بودم خونده بودم منظورم اینه که لازم نبود برای این یکی تلاشی بکنم جز اینکه گاهی باید انشای چیزی می نوشتم. وقعت به حرفم گوش نمیداد. محال بود وقتی داری حرف میزنی حرفتو گوش کنه. تو درس تاریخ به خاطر اینکه هیچی بلد نبودی انداختمت. میدونم آقا. خوب میدونم تقصیر خودمه. دوباره تاکید کرد. اصلا هیچی این این رو بعدج رو روان بود. مسخره است که حرفی و بپذیری و بد ملت دوباره تکرارش کنن. بعد سه بار تکرارش کنن. ولی تو هیچ چی نمیدونی شرط میبندم لای کتابتم از اول ترم باز نکردی باز کردی؟ راستشو بگو پسرچون خب یکی دو دفعه نگاه انداختم دلم نمیخواست ناراحتش کنم عشق تاریخ بود با نیشکنه پرون یه نگاهی بهش انداختی هم خب برگه امتحانیت بالای اون قفص هست رون رو نوشته ها بی زحمت برام بیارش نارای بدی بود ولی رفتم و براش آوردم راه پس و پیش نداشتم بعد دوباره نشستم رو تخت سیمونیش پسر نمیدونی از این سرزدن این چی پشیمون بودم برگم و طوری دستش گرفته بود انگار انه انداختن دستش ما از چهارم نوامبر تا دوم دسامبر رو تاریخ مصر کار کردیم یعنی یک ماه تو هم یکی از سوالای دل رو از مصریان انتخاب کردی؟ دوست داری بشنوید چی نوشتی؟ نه آقا علاقه ای ندارم اصلا انگار نه انگار برای خودش شروع کرد بخوندن اورا بشه جلوی معلمی و که میخواد کاری بکنه رو بگیری بخواد نخواد کار خودشو میکنه مصریها ها تیره ای از نژاد هند و اروپایی بودند که در بخش شمالی آفریقا زندگی میکردند این منطقه همانطور که میدانیم پهناورترین ناحیه در نیم کره شرقی زمین است باید میخمی نشستم و به این چرندیات گوش میدادم رو دست خورده بودم مصریها امروزه بنا به دلایل مختلفی برای ما قابل توجهند علوم نوین هنوز هم عناصر مرموزی را که مصری ها به وسیله آنها افراد را مومیایی کرده و تا قرنها از فاسد شدن اجسادشان جلوگیری میکردند کشف نکرده است بالاخره دست از خوندن کشید و برگر پایین گرفت دیگه یواش یواش حالم داشت ازش به هم میخورد بازم نیش و را انداخت مقالت البته اگه بش اسمشو مقاله گذاشت همینجا تموم میشه اصلا به قیافه همچین پیر خرفت نیش و این رفا نمیخورد ولی ته برگه برام یادداشت نوشتی بله میدونم آقا اینو توندی گفتم که بهش بفهمونم میدونم چه خبری و چی میخواد بگه ولی روش تأثیری نداشت بعد جوری گر گرفته بود آقای اسپنسر عزیز من از مصری ها همینقدر بیشتر نمیدونم با وجود اینکه کلاس های شما بسیار جذاب بود ولی نتونستم جذب مصری ها شوم اگر مردودم کنید اشکالی ندارد اینطوری به جز انگلیسی همه درس ها را افتادم با احترام هولدن کالفید برگه کفتیم پایین گرفت و همچیم نگام کرد انگار سر بازی پیمپونگ زده ترکوندتم گمونم هیچ وقت نتونم به خطر کارش ببخ باور کن اگه خودش همچین چیزی نوشته بود هیچ وقت بلند نمی‌خوندمش. منو من اون یاد داشت و فقط و فقط برای نوشته بودم که موقعی انداختنم از آب وجدان نداشته باشه پسر جون بابت اینکه که انداختمت ازم دلخور نیستی که <تصفيق> نه آقا اصلا آرزو به دل موندم انقدر پسر جون صدام نکنن وقتی کارش با برگ تمام شد سعی کرد بیندازتش روی تخت ولی آقا دوباره گند زد بازم پا شدم برداشتمشو گذاشتمش روی مجلی آتلانتیک واقعا تکرار همچین کاری اونم هم هر دو دقیقه بار خسته کننده بود پسر جون راستشو بگو ببینم اگه جایی من بودی چیکار می‌کردی اون خب اونطور که بوش می اومد اصلا از انداختن من راضی نبود منم شروع کردم به پرت و پلا گفتن گفتم چقدر آدم ناخلفی هستم و از این حرفا اینکه اگه جای اون بودم دقیقا همین کارا رو کردم و اینکه خیلی ناجوره که دیگران قدرش رو به عنوان استاد نمی‌دونن کلی از این دریوریا وری‌ها گفتم خنده دارش هم اینجا بود که وقتی این دری وری‌ها رو می‌گفتم فکرم جای دیگه ای بود از اونجایی که اهل نیویورکم یهو یاد تالاب پارک مرکزی شهر افتادم همونی که قسمت جنوبی پارکه به این فکر می کردم که وقتی برگردم خونه یخ زدی یا نه اگه یخ زده باشه اون وقت چه بلایی سر اردک اومده. داشتم به این فکر میکردم وقتی طالب یخ میزنه و هوا سرد میشه اردک ها دقیقا چیکار میکنن؟ فکر کردم شاید یکی میاد سوار وانتشون میکنه و میبردشون باقی محشی جایی شایدم نه اصلا شاید خودشون بال میزنن بیرن می جای دیگه عجب خرشانسی بودم که هم میتونستم دریوری وری بگم و هم به فکر ها فکر است؟ یه جورایی آدم وقتی با معلمش حرف میزنه لازم نیست خیلی زور بزنه. خودش اتومات پرید وسط دریوریام آقا همیشه میپره وسط حرفت. خب حالا که چی؟ واسه چی میخوای این کارو بکنی پسر جون؟ خیلی دوست دارم بدونم هدفت چیه. خیلی خیلی دوست دارم. هدفم از رفتن مدرسه و این حرفا ای کاش میتونستم شونه سفیدک زدش رو چون خیلی بیریخت بود اگه اشتباه نکنم تو دو مدرسه قبلی هم که بودی به مشکل برخوردی اینا رو نه تنها این قبل با نیش و کنایه گفت چشنیش بد جنسی هم زد تو مدرسه الکترون هیلز مشکلی نداشتم اونجا کسی بیرونم نکرد خودم بلش کردم ممکنه بدونم چرا؟ چرا خوب داستانش طولانی آقا یعنی داستان پیچیدهیه اصلا حوصله نداشتم کل ماجره رو تعریف کنم چه فایدهی داشت وقتی طرف نمی‌فهمید؟ اصلا مال این حرفو نبود یکی از مهمترین دلیلی که از الکترون هیلز رفتم آدمای های جلی بود که دورم کرده بودن همین یه آدم تو ویترینی مثلا نازمی داشتیم به اسم آقای هاست این یارو جلی ترین موجودی بود که به بودم. صد برابر بدتر از این آقای ترمر خودمون مثلا اینکه یکشنبه یک دوره میافتاد و با تموم پدر مدرهی که اومده بودن مدرسه دیدن بچهاشون دست میداد مثلا میخواست عده ی آدم بزرگوار در بیاره ولی اگه پدر مادر یکی از بچه ها سنش بالا بود و کمی چورک شده بود اون وقت با هم میدیدی چه برخورد زشتی میکرد کافی بود مادر یکی از بچه های یکمی چاق و زشت. یا یکی از اون کتهی بپوشه که شونوهاش اپول داره و کفشش سیاسفید ورنیه اون وقت همین آقای هاست یه دست خشک و خالی باهاشون میداد و لبخندی میزد و بعد میرفت نیم ساعت با یکی دیگه از پدر پدرمادر صحبت میکرد غیر قابل تحمل بود رو بود از اون مدرسه این نکبتی حالم به هم میخوره آقای اسمنسر سوالی ازم پرسید که درست نشیدم. فکرم پیش آقای هاست بود ببخشین چی گفتین آقا یعنی مطمئنی میخوای پنسی رو ترک کنی؟ خب هنوز یکم شک دارم ولی خیلی جدی نیست. هنوز اونقدر نیست که بتونه جلومو بگیره. گمونم یعنی هنوز شک اصلی به دلم نیفتاده یکمی طول میکشه تا بیاد سراغم. الان فقط و فقط فکر فکرم اینه که چهارشنبه خونه باشم. میدونم آدم احمقی هستم ولی چیکارش میتونم کنم؟ یعنی تو واسه آیندت هیچ برنامه‌ریزی نکردی پسر جون؟ چرا؟ چرا؟ به فکر آیندم هستم. یه لحظه به آیندم فکر کردم ولی گمونم خیلی به فکرش نباشم اونقدر واسم مهم نیست باید به فکرش باشی باید پسر جون نباید بذاری از این دیر ترشه دوست نهشتم ازش همچین حرفی بشنوم این حرفش یه جورایی یعنی من مرده بودم زده حال بود گمونم به فکرش بیافتم دوست دارم یکم به فکر بندزمت پسر جون میخوام کمکت کنم ببین من میخوام رو بگیرم واقعا هم خیلی سعی کرده بود دستمو بگیره اما نمیتونست بفهم ما دو قطب متضاده هم هستیم <تصفيق> میدونم آقا خیلی ممنون واقعا از کمکتون ممنونم اینو گفتم از روی تخت بلند شدم پسر تخت لعنتیش زلم کرده بود من دیگه کم کم باید برم تو باشگاه یه سری خوردریز دارم که باید جمعشون کنم و با خودم ببرم خونه. نگام کرد و دوباره سرش رو جلو عقب کرد و قیافه جدی به خودش گرفت. دلم به حالش سوخت. ولی بیشتر از این نمیتونستم صبر کنم. بعد میرفتم طرف قطب خودم و از قطب واقی اسپنسر دور میشدم. بعد از پرتوبه علکیش که به هدف نمیخورد و اون رُب دشامبر کهنه‌ش که شونش از اون بیرون زده بود و بوی دارخونه اتاقش فرار میکردم. دلیلی نداره نگران باشین آقا. جدی میگم. چیزیم نمیشه الان توی دوره خاصم هر کسی گاهی میره توی این دوره و این حرفا زورکی دست گذاشتم روی شونش درسته نمیخوای قبل رفتنت یه لیوان شیرکاکوه کاکاو داغ بزنی خانم اسپنسر میتونه برات چرا چرا اتفاقا خیلی دوست دارم ولی کارم فوریه باید برم باید یه راست برم باشگاه ممنون خیلی ممنون آقای اسپنسر بعد با هم دست دادیم و این حرفا خلاصه اینکه خیلی حالگیری بود براتون نامه می مینویسم آقا حواستون به سرماخوردگیتون باشه خدا آفظ پسرجون تا در و اتاق و بستم و رفتم طرف پذیرایی دو دادش بلند شد ولی نشنیدم چی گفت هرچند مطمئنم که هوار زده موفق باشی امیدوارم موفق نباشم به عمرم سر کسی هوار نزدم موفق باشه تو هم اگه خوب فکر کنی میبینی که چقدر کار زایی و مزخرفی بود